بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد کلاس تعلیم احکام حج از فرائز بزرگ اسلام که بنیاد اسلام بر آن هست مسئله حج حج از زمان حضرت آدم علیه صلاة و السلام بوده و هست و تا قیامت هم انشاءالله الله میماند. حالا چون که عموما حج برای خیلی ها در سال در عمر یک بار اتفاق می افتاد. یادگیری احکام حج مانند خود حج فرض هست به صورتی که بر شخصی حج فرض می شود باید احکام آن را هم یاد بگیرد چون که حج بدون احکام حجی نیست تا زمانی حج مقبول نباشد دن الله رب العالمين فزیرفت نمیشه و از اوه انسان هم صاقیت نمیشود. خیلیها فکر میکنند که حج یعنی رفتن به مکی و برگشتن به وطن در حالی که انجام نیست. باید حج را با فضائل و با احكام یاد گرفت. تا حج ابراهیمی الله رب العالمین نسیبی فرمایند. در حال پس وقتی که شخصی هزینه میکند و سالها سال در انتظار دیدار یک نظر بر بیت الله هست بعد قطعاً این نظر خود را خالصانه برای الله رب العالمین قرار بدهد نیت درست خیلی مهم هست حضرت ابراهیم علیه السلام والسلام بنای بیت الله سنگ های بیت اللہ را وقتی که میگذاشت بر هر سنگی دعا می که ربنا تقبل منا بار الله از ما بپذیری این عمل خیر را این دعا بود دوتا تا پیغمبر پدر و پسر دارند بنا میکنند به بیت اللہ را جایی که مردم همیشه باید مرجع و معوای مردم باشه اما پیغمبر هست عمل هم خیلی بالا یک عملی ماندگار تا قیامت هست چون فرصت نیست که بگم خود الله از که تحسیل شده در این مورد روایات متفاوت داریم بیت الله بعضی معتقدند که فرشتها یک گنبد زموردی درست کرده بودند و بعضی هم معتقدند حضرت آدم علیه السلام اولین بانی هست پس بیت الله از قبل بشر بوده فرشتهها درست کردن یا آدم درستش کرد و بعدها که در طوفان نو علیه الصلا وسلام اون گنبد دواره پرید و به آسمانها برده شد یک تپ رنگی اونجا ماند و مردم معتقد بودند که اینجا محل قبولی دعا هست از دور از کل جهان افرادی میرفتن گفت اینجا محل قبولی دعا هست تا اینکه ابراهیم علیه صلات و سلام تشریف آوردن اللہ رب العالمین در صدر ابراهیم بنا بکن الله چیزی دیگه ایز یرفعو ابراهیم القوائده بلند میکنه یعنی بنیان نبی بزاره در بلند میکنه پای قبل وجود داشت پای بیت الله از قبلها بوده ابراهیم بلند کننده پایها هست از قبل بود. و جالب این است که همه انبیا حج کردهاند و همه انبیا به مکه مشرف شدین در بعض روایت میاد که چهار هزار پیغمبر در مکه دفن هستند چهار هزار پیغمبر حتی بیگن در مطاب چندین سال پیغمبر اونجا مدفونن پس درابرین این بیت الله از این روز نیست داخل صحیح بخاری حدیثی داریم که نبی, صل لبیك لبیك مکرم یعنی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که همون یونس هست می‌بینن داره سوار شتر قلبی گویان لبیک اللهم لبیک داره مکه مکرم میره یا نبی مکرم است داره اون صحنه رو به تصویر میکشم داره یونس علیه السلام داره میره به طرف مکه و تواف میکنه و جایی برای حضرت موسی همین چیزو به کار بردن پس انبیا علیهم و, و سلام برای حج از دور می و هم اونها حج می کردن وقتی که الله رب العالمی هم اعلامی فرماند و علی ناس که جلو بیتی من ستا علیه سبیلا حج بیتون الله بر مردم فرضه. این امر الهی هست حج بر انسان ها کسی که می تونه بره حج توانایی داره بره بر بر بگرده، حضیر هست باید بره بر برای انجام فریضه حج و نبی مکرر اسلام می که بونی الاسلام علی خم سن بنای اسلام بر پنج پایی هست شهادت لا اله الا الله نماز خواندن روز گرفتن زکا دادن حج حج هم جز فرائضی هست که الله رب العالمین برای انسانها گذاشته هست پس بنابراین حدیثی دارین برای فضیرت حج بگم حضرت عبدالله ابن عباس که سر نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه و سلم می در حجت الودا بود فضل ابن عباس یعنی برادر عبدالله بن عباس کے سر نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم کشت سر نبی کریم سوار سواری بود خانم زیبارو آمر گفت یا رسول الله پدرم حج را دریافت یعنی واجب شده و حج هم فرض الهی است اما پدرم ناتوان هست اف احجو انهو آیا من بجای پدرم حج بکنم یا نه فرمودم بله. یعنی اینجا کسی که حج بر او فرض شد اما توانایی حج را ندارد باید برای خودش کسی را نایب بگیرد و حج بدل را انجام بدهد اینجا هم در خود مراسم حج بود و این خانه اومده و جلوی نبی بکرر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مگرفت و پرسیدن فضل ابن عباس بطلیف خانم نگاه میکرد نبی بکرر اسلام جوری کرد تو حالا نگاه نکن بزایت جواب سوال شو بده باز تروندن که بلی حج فرزه و شما باید بجاش حج انجام بدهید خیلی ها هستن که توانعی و اما اون انگیزه حج نیست حج اللہ رب العالمین در مورد حجی چیز خیلی عجیبی می میفرمایند می که و اذن فی الناس اعلام بکن ابراهیم برای مردم برای حجی یاتوکا که و علا کل زامر یعطیر من کل فجن عمیخ اعلام بکن مردمی می آین حضرت ابراهیم علیه سلاة و سلاف بار اللہ برای که اعلام بکن تو میکی کسی نیست کجا اعلام کنم چرا اعلام بکنم کجوری اعلام بکنم الله فرمودن که ابراهیم حالت تو اعلام بکن ام ابلاغ این کلامتو برای انسانی عهده من هست من الله می رسونم این ابلاغتو این اعلام من میرسونم. ابراهیم علیه السلام وارک توی ابو قبیس تشریف بردن وقتی ایک انجا فرمود یا ایوه الناس ای مردم الان کسی خیلی مقتصر اهل مکه شهر خیلی کوچی کی. ابو روزی امروزه کوی ابو هم که طرف صفا انشاءالله که مشرف میشی طرف صفا همون ساختمان شاهی آل سعود که هست با شیشه های قهوهی همین همون کوی ابرو قبس هست که مونده و قرار هستی کو هم برداشته میشه شاید این که رفتی انشاءالله کوهو میبینی که نوز ساختم بالایشه با بالای کو و اعلام بکن بالای کو رفت و اعلام فرمز یا ایوه الناس ای مردم بیایید قد به بالحج خداوند متعال شما رو عبر کرده که حج را انجام بدهید یعنی حج بر شما فرض هست وقتی که ایلان فرمودند چه؟ فرمودند که حج انجام میدهید چرا؟ تا که الله شما رو جنت انایت بفرمایند. حج برای جنت هست جنت حج رو جنت و الله رب العالمی شما را خاطر سختی های حج از جهنم هم نجات میدهند. وقتی که ابراهیم علیه صلی اللہ در تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس می آیا نی که فعجابهو جواب لبی لب گفتن ندا ابراهیمی که من کان فی الاسلاب فی اسلاب الرجال والارحام النساء حتی در کمرهای پدران و در رحمهای مادران همونجا لبی لب گفتن مردم ہم جوواز گفت لبیک اللھم لبیک لبیک الا شریکلک لبیک در رحم این نداها اومد خود اسپرمها داخل تمارها امداد را داد لبیک اللهم لبیک یعنی خدایا ما حاضریم خدا بفرما عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی یک بار گو لبیک اللهم لبیک یک بار حاضری اگر کسی بار بار گو لبیک اللهم لبیک لبیک اللھم لبیک بار بار حج نصیبش میشه اگر کسی بیشتر گفتے به بی اندازه لبه که که اونجا گفته، الله رب العالمین حج نصیب میکنن میبینی خیلی ها خیلی زیاد میرن و اما افرادی با سرمایه های کلان هم یک بار هم نصیب نمیشه این بخاتون است که لبه اونجا نگفتن اجابتی صورت نگرفته. پس به هر حال اونهای که لبه گفتن ندای ابراهیمی را اللہ رب العالم چ یعطو که رجالا افرادی پیاده میآیند و علا کل زامری یا سوارش و طرحی لاغر هم خود را به مکه می یعنی دوان دوان میآیند، پیاده پیادی می اونهایی که عشق حج و دیدار حرمی اونها را بیقرار کرده حاضرم پیادی هم است که گذشتگان که پیادی می رفته. الله رب العالمین برای اکرام ابراهیم می فرمین یعطو ابراهیم پیشتو میآیند. آیند حال ابراهیمون جامیست ابراهيم چهار هزار سال جلوتر وفات کرده. از این دوست تزوان حضرت ابراهيم نزدیک چهار هزار سال راد شده. اما الله رب العالمين سه هزار سال بعد از این آين نازل فرمود جاتو که رجال افرادی پياده نیايم. یعنی يعني اينجا اعزاز ابراهيم و ابراهيم تو ندادادی که مردم حج بکنید. و رب العالمين به خاطر شرافت تو فرمود مردم ل... ندای تو لبیک می یعنی گویا مردم پیش ابراهیم علیه الصلاۃ و السلام می روند تفصیلا صلی الله رب العال و خاطر اعزاز و شرافت ابراهیم خطاب را برای ابراهیم علیه الصلاۃ و السلام فرمودم در حال حج چیز خیلی عجیبیه و اینقدر حج اینقدر عجیب و منافع حج اینقدرند که هر کسی بخواد تعریف کنه از حج در کلام این نمی گنجد اون لذت حج اون علاوهت های حج در بیان انسان نمی آین. اگر من یک ماه هم از فضائل حج برای شما بگم و همه شما اینجا بی بخه، حالا هر اما اون لذتی اونجا حاصل میشه در کلام انسان نمی گنجدین چرا چون که خود الله فرمودند که لیشهدو منافعا لهم خودشون ببینن الان بی خودتان برید ببینید در کلام نیست اینجا هرچی هم بگیم نه لیشهدوا منافعهم بری ببینید چی خوبی های الله گذاشته و چی قربی الله رب العالمین نصیب میکنه که مختصرا در فضائلش میگم ان شاء الله احکامو رسیم بخاطر این است که الله رب العالمین وقتی که ابراهیم فرمودن که لیشهدوا منافعهم ببین مردم ببینید منافع را اونجا خودتان درک میکنی یک بار, یک بار اگر حج نصیب شد و حج قبول بود بعد هر سال تمننامی که وقت ایام حج برسه اون بیقراری این قدر زیاد میشه که چه بروز همونجا ای کاش ای خدای ما رو اونجا نصیب بکنم و منافی این زیادن زیادا های سیاه بیت الله این جذب میکنه انسان انسانو حاضر نیست از حرم در بیرون نیست و چار داخل حرم حاضر، فقط سنگه ها رو نگاه بکنن این قدر جذاب در انسان طرف خودش جذب می‌کونه، می‌کشه اون انوارات، اون تجلیهایی که الله رب العالمین نازل می‌کنه. به هر حال حج بیت الله اون چیزی بود که انبیا عليه الصلا و السلام میرفتن، چیکار می‌کنن؟ طواف می‌کنن، اونجا می‌دومون. چرا طواف می‌کنه سنگ‌ها رو؟ سنگ اینجا هم فراوانه. تواف میکنن اون انوارات ربرا اون تجلیات را رب را که اونجا الله رب العالمین نازل میکنن بر بیت الله یک حلاوتی عجیب یک زیبایی عجیب در گرمای طاقت فرسای مکه در تیماء یا برده الی نگاه بکنی مطاف موج میزنه افراد میافتند می میرن اما مطاف موج میزنه نمیگن زیره کلیرها بریم بخوابیم فقط همون خوبیهای حجن دارن بیت الله در این صحنه رو داره خودش جمع کُنه در طول سال هرگز سوا بیت الله قاتل نیست در نگرم ما نه فرما نه طوفان نه الا وقت نماز همین شونجا طوافاسو و ان کشش آهن رو بای الله هر انسان در هر کجای کره خاکی زندگی میکنه اما قلبش همونجا یک بار این تش محبت الله رو ببینه همه همین آرزو رو داره یک بار اینو ببینه اما اوناهایی که یک بار رفتی اونجا اولین دعای هر حاجی میره خدای بار بار بار اینجا بیار یک بار مشرف شد اگه آرام نمی گیره بار بار خدای همیشه مشرف بکن این حاجی رو من در مدیده منور دیدم یک کلاس سندی داشت ظاهران خیلی شیک بعد که با هم صحبت کردیم. سوالی پرسی از کجا هستی؟ گفتم از زیران. با گفت چند بار حج اومدی؟ سوال جوال آخیر من گفتن چند بار اومدی تو؟ قالبا گفت 26 بار اینجا حج اومدم 26 بار شیش بار کارخانداری بود سرمایداری بود گفت 26 بار مشرف شدیم اما هر بار که میاد تشنگی بیشتر میشه هرگز این تشنگی من تمام نمیشه تاک مشرف میشم منو تشنگیتر میکنه منو بیقرارتر میکنه این به طلاب گفت انصار با تمام اهل خانواده اومدن تمام خانواده انگ تیزکان مهندسان از عروس گرفته تا دادامادها همه با هم اومدیم گفت یک سال من اومدم کراشی داستان کوچیک یما گفت اینجا کراچی اومدم برای که برم حج ویزای من اومدی ویزا و ویزای همسرم نه آمد گفتم من نمی تنها نمی یا برم با هم و یا تنها نمی میرم میگرفتم سند دو اومدم دو روز مونده بی عرفات حج شروع شده بلیت از دوستان گفت که حج نمیرید گفتم چرا میرم سوار شد میگم من سوار ها ما که مستقی وقتی که رسیدم جده مستقی رفتم عرفات روز عرفات رسیدم میگم الله اینجوری هم نصیب میکنه گفتم نمیگیرم لغو کرده بودم سفر رو اما دوباره گفتم نمیری گفتم چرا میرم مستقیم رفتم به عرفات یک اس بار مشرف شده بود گو تشنگیم داره بیشتر میشه و بیقرارتر میشه بیار حال حج یک بار الله نصیب میکنه و انسان تاز زنده هست اگر حج پذیرفته شد ابزورتری اب انعامش این از که الله رب العالمین دوباره فقر را بر این خانواده نمی آورد. فقر برای همیشه الله رب العالمین از این خانواده جمع میکنه فقیر نمیشه این و حج اگر قبول شد الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه حد فزی رفت شده پاداشش فقط بهشت هست پاداشی غیر ارزی نداره حدیث داخل صحیح بخاری داریم که حضرت آیش رضی اللہ و تعالی انها سواج از نبی مکرم السلام صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدن گفتی آرسول اللہ شماک برای جهاد خیلی فضائل داری تعریف میکنی حد جهاد خیلی فضائل خیلی زیادی داره برای ما خانوم ها که نمی تونیم جهاد میکنین آیا اجازه جهاد هست فرمودن نه خانوم ها جهاد بر خانوم فردی ولکن نه اما چیزی بر شما هست حج حج مبرور انجام بده. حج پذیرفته شده برای شما اندازه جهاد به اندازه جهاد عج میبرید شما و جا دیگه نبی مکررنسان فرمود اگر حج پذیرفته شد حج مبرور به چه حج میگه حجی وقتی انسان میره درگیر نمیشه دشنام نمیده اختلاف نمی کامل تسلیم امر الهی کسی درگیر شد میگه من حاجیم من اینجا دیگه با کسی درگیر نمیشم حج پذیرفته شد به صورتی از مکه برمیگرده گوید امروز از مادر متولد شده تمام گناهها الله رب العالمین مغفرت میکنم. حتی بعضی از علما معتقدند که حتی های کبیره حتی حق و نسی ذاای کرده گذشته ها رفتیان اونا الله رب عالی میبخشد حقوق ن کسی کسی بدهید آاشتوه پرداخت بکنه اما حقه هایی که برگردنش بودن قابل پرداخت نباشد اونها الله بول عالی مخثررت میکنه. کامل شسته رو از مکه برگشت میدهد. هندام که بخوا از مکه بر بگرده دی قلب شسبید با اون سنگ های سیاه بیت الله گریه کنان مکرر رو ترکبی میکنه. خوشحال نیزدار میره. تامانای کا چند روز دیگر این ویزا تمدید دسے یک اندونیزیار یک ترکی رو من داخل بیت الله روز آخرش بود داشت که از مکی میره بیرون بیرون از حرم بیرون از مسجد الحرام جای تونل ها که امروز می دستهای سرویس های ابوجه اون طرف بود به زمین افتاد خاک مکہ رو بوسید دیدی یعنی که واخاخر بوسه میزد که در مکہ رو رها میکنم به هر حال این مکه بهترین جا روی کره مکه مکرمه هست که الله رب العالمین رو اینجا قرار داده است به هر حال پس حج حج چون یکی از فرایز بزرگ الهی بر انسانیت هست و فرض کرده الله رب العالمین به کسانی که توانمنده به حج بیت الله رو انجام بدهند و اگر حج رو انجام نداد و بدون از حج اگر حجو انکار بکنه کافر میشه اگر این روزه متاسفانه گایگاه شنیده میشه میگه چی اینجا میرید میچرخید داخل اون چی هست برای چرخیدن چرا باید بری هزینه بی که بری حج داغی همین سوال از خود بنده میپرسه من داخل مکه چی از علا داری سنگ ها به بیا چرا ما بری هزینه بکنیم کسی اگر دار چنین عقیلی باشه از اسلام میره بیرون مومین موتی این است که الله فرمودن برو چشم میرم هر جا الله عمر میکنه میرم حالا اینکه کسی در درک کسی بیا یا کسی درک نکنه اموازم این نیست میگن وقتی که بیت الله تعمیر میشد و انگام کلرها رو نسمی کردن چون سنگه هایی که آوردن از ایتالیا و از کشور خارجی آوردن و این سیستم سرمایشش کلا خیلی پیچیده و خیلی بزرگه کسی اونجا از محل تعمیر کار می چون خارجی ها کار میکنن کنند، خارجی ها دیگه هرگز یک لحظی از وقت نمی دوزند، کامل متواتی وقت می شند تاریخ می یک خارجی وقتی اونجا برای حج عمری بود، هرگز نگاه نکرد و بهت الله رو، کارش کارشو کار میکرد میره یک بار فقط یک بار اینجور نگاه این چه خبره؟ وقت اینجور نگاه بکره، تا پایان وقت دارید نظارو بر نمیگردونه. اینقدر جذب بیت الله میشه اینجا چه خبره در حال بیت الله هم دیگه خیلی عجیبه الله رب العالمین حج را واجب کرده است کسی که توانایی حج را دارد باید ان سرمایه به اندازی داشته باشه بره مکه و بر بگرده هزینه سفر رفتن تا برگشتن و خانواده در اختیارش باشن برای چنین شخصی حج فرض می شود. نصاب خاصی بیشتری نداره خیلی آسون هست هزینه رفتن تا آمدن هزینه ها نه هزینه اضافی نه هزینه انجام حج متأسفانه رسول ما این قدر خراب شده ان که برای خیلی حامیان که ما هزینه خود حج داریم اما هزینه اول و نداریم دعوتی هایی که میشن استغلالاتی مردم میکنه از این هایی که یک روز هم استفاده نمیشه تصویر میارن اما یک روز استفاده نمیشه اینها این ها رو ما نداری خیلی از آدم ها حج به خاطر همین نمی کنن که اون حزینه های بعدی خیلی زیادن پس حج بریم اما سعی کن این رسوم از بیان ببریم توفه حرم فر آب حرم هست آب زمزم یا خرما کمیاری که میاری های بیشتر جای نماز بیار یا حتی بعضی ها که خیلی ب... چیزهای بزرگتری حتی جواهرات بعضی آورند که باید برای افراد خانواده بی آوریم بر نزدیکان بیاورین، چیزهای دیگر این هر بزرگی کنار این رسوم بعضی بین برن، بعضی که دارن، بعضی ندارن، اونهایی که سرمایه دارن ظلم را بر اون فقرا میکنن، اون فقیر هم مجبور مثل این آقا عمل بکنید دو تا برادرن یکی سرمایه یکی هم شاهده داشته باشه، اما وقتی دو تا با هم برن حج مجبور و برادر بعدی مثل برادر سرمایده حرکت بکنه. قرض بکنه. چرا؟ چون مردم هر دو جا با هم میرن. بیگه فلانی داد و فلانی نداده. دادور ندادن ها مشکل ساد شده برای مردم. پس حج وقتی که وقت باندازه رفتن و آمدن حزینه داشته باشید، حج فرض میشه. تحنین قدر حساب باز کنی. روی تحایب حساب باز نکنی. اونها رو بزارید کنار. این توحفه شما می‌خواد یاداری همهشون از چین وارث شده ها. چینی چینی‌اند توفه حرمه آب هست خورما، خرما حج آسان بگیری اواکه حج آسان بگیری میتون هر سال حج کنی یه حدی اقل افراد خانوادگی که اف فقیرند خواهر برادر افراد دیگر رو با خودمان حج ببری پس به جای این همه توفه یک نفر حاجی رو با خود بر حج تا حج انجام بده تا براو سنگین نباشه این فرهنگ را جایگوزین فرحنگ غلط باید ما بکنیم در حال اگر کسی هزینه داشت هزینه داشت اما اینها رو خرج کرد زمینی خرید ماشینی خرید یک خرج جایگوی اینها رو, رو خرج کرد خرج برای شده بوده باید دوباره هزینه هاش را جمع کنه پوله ها رو جمع کنه برای حجی که انجام می دهد حجی که خیلی زیاد مشهور هست حج تمتو حج تمتع به حجی گفته میشه که یک شخصی در ماهای حج عمره انجام بدهد مثلا ماه حج کیه؟ شوال هست، زیقاده هست و ده روز زل حجی. در این ماها اگر کسی عمره انجام داد و از احران بیرون آمد دوباره حجی انجام میدهد میشه حج تمتو این نقطه اینجا بگم بازی مردم فکر میکنن مشهور بین مردم این است که اگر عمر انجام دادی حج فرض میشه اینجوری نیست کسی عمر انجام بده حج فرض اینجوری نیست خیلی ها بخاطری عمره هم نمیرن میگن مبریم عمره هزینه عمره خیلی کمه دوباره حج فرض میشه حالا ما عمره هم نمیکنید در حال که اینجوری نیست عمره مسئله جداگانه‌ای هست و حج هم مسئله جداگانه‌ای هست یا این است که اگر کسی رفت حج، اللہ این هم بیگن کنی بعدی هست. خیلی ها میرن رمضان، ماه مبارک رمضان برای انجام عمره. و تا شوال اونجا میمانند. در شوال عمره انجام میده. آیا بر این شخص حج فرض شده یا فرض نشده؟ جوابش این است که اگر این شخصی که در ماه مبارک رمضان مشرف شده یا در شوال رفته مکه مکرمی برای عمره، اگر توانایی دارد اونجا بماند حزینهاشو دارد ویزا هم تمدید شده است یعنی حج میتونه بشینه حج واجبه اما اگر هزینه ندارد یا ویزاش تمام شده بازم بر این نشستن تا حج نیست یه مثال بعدی خیلی ها رمضان برای حج بیرند و دوباره بر میگردند اگر میتونن بشینن هزینه دارن یا ویزا دارند باید بشینند اگر ویزا تمام شده باید برگردن و حج بر اونها فرض نمیشه پس اینجا این هست حج پس اگر در ماه های در حج یعنی شوال ماه شوال ماه بعد رمضان ماه عیل اگر ماه عیل بود یا ماه بعد زیقاده بود یا اول زل حج عمره انجام داد و بعد از اون حج کر میشه حج تمتو این میگه حج تمتو پس مسائل حج تمتو فرق میکنه. چی از فرقی؟ فرق شکن است که بعدها وقت حج انجام میده، بعد یک گزفندی باید گزفن اینجا بکشه یعنی واجب میشه این برای تمتو این قربانی قربانی تمتو است این گزفند قربانی شما نیست که در عید انجام میدی. این گزفندی بخاطر دمی هست واجب بخاطر عمر کردن و حج کردن واجب می شوید جلوتا ایشاللہ این آخم جلوتا می مسئله بعدی ما هست عمره چون که با عمره شروع می شود اول عمره در عمره کسی عمره انجام میده در هر در طول سال عمره جایزه در طول سال در تمام روزهای سال عمره هست الا حاجی که برای حج رفته باشه در روزهای حج تا سیزدهم عمره نباید انجام بده از روز هشتم که احرام برای حج ببنده میره منا و عرفات و مزدلفه برای تا 13 هم عمر مکروه تحریمی هست اگر حج نمی کنه مثلا اهل مکه حج نمی کنه اونجا نشسته میتون عمره بکنه حاجی که می حج بکنه از روز هشتم تا 13 هم برای او عمر مکروه تحریمی هست باید بره دوباره مراسم حجش به منا میره دوباره می عرفات و مزدنفه پس حاجی میره اونجا برای حج اولین کاری که حادیم انجام میده، عمره انجام میده. در عمره دو فرض داری یک احرام فرض هست دو تواف بیت الله فرضه احرام فرضه و توح بیت الله فرض هست و در احرام هم وقتی احرام میخواده بنده احرام احکام جداگانه خودشو داره احرام میبنده در احرام تلبیه گفتن و نیت کردن هم فرضن تا این ها نگوید احرامش درست نیست و در احرام واقع نمی شودید. پس بنابرایم. وقتی واجب واجبات حج علا واجبات مختصر بگن کسی میره عمره میکنه صفا سای بین صفا و مروی از صفا تا رفتن آمدن این واجبه. یعنی اگر کس اینو ترک یا قبل از اون از نوحار و تراشید دوباره دیگه عمره دوچار مشکل شده گوزفندی واجب میشه. پس کسی بیره عمره اول احرام میبنده بعد از اون تواف میکنه رو بس صفا و بین صفا و مربه هفت بار بیره میعایده و بعد از اون از احرام میاد بیرون عملا که منشالله با این تصویرش نشان میدم اینو به حال. پس فردی که بخواد عمره انجام بدهد کجا احرام ببنده از میقات میقات ما چندین و میقات داریم و میقات داریم اول قبل از میقات ببین بیت الله الله رب العالمین با کمر بند این رو کلان محفوظ کرده این شرافت بیت الله اول هست میقات میقات کمر بند اول در چهار طرف بیت الله کشیده شده و میقات ها رو حضرت ابراهیم علیه الصلا و مشخص کرده اول میقات بعد از اون میرسین به هل حل بین میقات و بین حرم یه منطقه بعدی هست میگن حل که روزه خیلی مشهور هست مسجد حضرت آیشه تنیم این جایی که عمره میبندن اهل مکه اونجا و بعد از اون میشه حرم و بعد میشه بیت الله سه بند دار بیت الله کشیده پس ما که بیرون از میقات زندگی میتونیم به ماها گفته میشه آفاقی این آفاقی که بیرون از میقات اونهایی که بیرون از میخار زندگی میکنن و هدف اونها ورود مکه مکرمه هست باید با یک خاص با لباس مخصوص وارد بشن مانند کسانی داخل کارخونه ها میرن داخل معادن میرن با لباس مخصوص میرن بیت الله لباس مخصوص خودشو داره کسی بخال از بیرون میخار زندگی میکن مانند ماها و هدف هم ورود مکه مکرمه هست باید با لباس مخصوص احرام وارد بشه. قبل از رسیدن به میقات باید احرام را ببندد. اگر احرام نبست و از میقات عبور کرد رفمت که مکرمه اونجا دواری گسفندی لازم جریم میشه جرائمان که جرن کرده و جرائم را باید پرداخت بکنند. پس احرام را میبندد قبل از میقات کجا یا داخل فرودگاهی که محل پرواز هست جایی که لباس را نمی پوشاله، رسی قبل از اینکه به میقات خود هواپیما اعلام میکنه نزدیک میقاته، نیت احرام را بکنید. احرام پوشیدن لباس نیست، اون نیتی هست و تلبیهی که شما میتونید لباس پوشیدید، شما داخل احرام نیستید. لباس پوشیدید، بعد لباس نیت میکنید و بعد از نیت کردن باز لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اینا الحمد و النعمت لک و المبر لا شریک لک با گفتن یکبار اهرام کامل میشه. که قبل از این شما داخل اهرام نیستیله و همین جور رفتی، بعض حدی شما حدی درست نیستیله که فرض اول که اهرام باشه شما انجام ندادی. فصل لباس اهرام را می بندید حالا یکی بیاد ولباس و لباس ببندی حالا کین احرام برای الله احرام زندان و مال با هم می کنه احرام مرد از دو دست لباسن دو دست دو چادر یکی پایین می بندری که بالا روی خودش می اندازد اگر هوا سرد بود اینم بدونید اگر هوا سرد بود در فصل زمستان مشرف شدی یک کسی بیمار بود و دیاز به گرم میتونه روی خودش پتو هم بی اندازه انداختن پتو شرط نیست اما شرط این است که باید تمام لباس دوخته از بدن برن بیرون لباس دوخته لباس ظاهری باشه زیرپیراهن باشه باشه لباس شورت باشه بعد هنه رو بیرون کنه فقط بعد دو, چا دو تا چادر اینها رو میبنده و محکم رو کردن اگر بیمار بیمارو باره خودش بیاندازه پتو بیاندازه چارت رو بیاندازه اشکال نداره اما نپوشه پوشیدن ممنوع هست اول بد چادر جهر؟ حالا بستن این لباس به دو صورت هست حالا ایک صورت شگیر هست داره میبنده این راحت و آسان بستن این و روی این کمر بند، کمربند کمر بند هم اشکال نداره جائز هست به خاطر حفاظت پول‌ها و چیزهای اداره اشیاء قیمتی گم نشند یک پوشتا ها یک پوشتا هند پوشتا ور چه سکش ده به هر صورتی راهتی ام ولی شهود اینجا به بندی شما حالا این هم باستی قبول هست یا به صورت دیگر هم باستی دی قبول هست باید چادر بسته بیشه اینجا بالا این چادر بسته که؟ حالا این چادر بستی بالای چادر, بستی، چادر بستن که بستن کمربند که به خاطر حفظ اشیاء قیمتی علا موبایل هست پول هست بستن این کمربند هم اشکالی ندارد اما گره زدن بعضی حالا الاحرام از پایین گره میزن، معنی شورت درست میکنن یا دکمه میزنن حالا این کمربان بالا باشه پایین باشه هر صورت اشکالی نداره بالای گره باشه زیر گره باشه برای خود کمربان مشکلی نیست یا از ایک بازی کیفه کوشک دارن که بخاطر ای وسائل این هم اشکالی نداره پس بستن این مهملی جائز است و بالا باشه زیر احران در هر صورت جائز اما بعضی هستن که دقم درست نیتونن دقم درست کردن یا سوزن زدن با سوزن می که الله راحت باشیم نیاز باید نگه داشتن نباشه باستن احرام با سوزن هم جائز نیست حالا این مرحله این احرام شما سر که، اما اینجا باید کلاه برداشته میشه کلاه را بر میداری حالا تا حالا در احرام نیستید. میری فرودگاه یه غسلی داخل فرودگاه انجام میدی اگر امکان پذیر بود اگر در فرودگاه حمام نبود خون غس مستحب هست اگر کسی به غسل نرسید اونجا رسید زمانی که آبی نبوده پرواز فارو، رسیده بود غسل بذارد به سوار حواق ما غسل کردن واجب نیست مستحب دی سنت مستحب بیشتر نیست پس اول لباس میپوشید و قبل از اینکه که احرام کامل بشه دور کد نماز ناسر اونجا نماز احرام داخل فرودگاه. حالا هنگام خاند نماز سر را بپوشانید. چون هنوز شما در احرام نیستید پس هنگام خواندن درکات نماز احرام با سر پوشیده بیشه سر شیرده سر شیرده کله نه دیگه و تم لباس احرام و لباس سر می پوشن درکات نماز می خونن بعد از اینکه درکات نماز خونده شد بعد فورا سر رو لوخت کنه سر تو بر داد و سر اوریان تا پایان حج که پای حجو انجامی دہید پس حالا تا میره جلو سر سوار حواقه ما هنوز هم احرام بسته نشده نماز خونده لباس پوشیده اما شما هنوزم در احرام نیستید باید صبر کنید یا قبل از میقات احرام میبندید یا رسیدن ن... میقات نزدیک میقات که رسیدید اعلام میشه نزدیک میقات باید قبل از میقات احرام بسته بیشید. صبر نکنید ما به میقات برسید شاید داخل حواقه ما خواب رفتید و و تجاوز بیغا صورت گیره و هواق دوباره بر نمیگرده به خاطر شما مستری می و یک گسپندی بر شما لازم میشه. پس قبل از اینکه بخوابید احرام را کامل کنید و بخوابید پس نیت میکنید نیت کردن اونجا واق فرض هست نیت میکنه که من اینجا حج میکنم حالا اگر عمری می انجام بده چی میگی اللهم اینی ارید العمرتا فیسترها لی و تقبلها منی باری لها فاسرگو بلوچرگو باز هم درسته باری من اراده عمره دارم این عمره را برای من آسان بکن و از من بپذیر هنوزا تمام نشده نیت اول فرد انجام دادی بعد ازو بیگی تلبیه میخانی دی لبیت اللهم لبیت لبیت, لبیت, لبیت لا شریک لک لبیت ان الحمد و نعمت و لا شریک وقتی که این خانده شد احرام تمام با حالش شمایی شخص مهره تمام ممنوعات احرام برسمان می آیم یعنی استعمال عطر حرام میشه شه استفاده های خوشبوب حرام میشه شه قصدن بو کردن اطر هم حرام است نباید اطر رو بو کنی اگر جای محلی اطر بود الا اومد اشکال نداره اما قصدن اطر رو بو کردن یا گلهای محمدی گلهای بعدی رو بو کردن هم جائز نید حتی ادویجات خوشبو رو هم نباید داخل قضا استفاده بکنید حالا ممنوعات میآیند و در حنگام احرام بسته شد باید سر کامل و احرام مر باید سرش بیرون باشه صورت بیرون باشه دستها بیرون باشند و پاها باید بیرون باشند. اینها در احرام ضروری هن. بیرون کردن سر دستها و پا حال واجبند نباید جوراب کسی رو پوشه هایی که ساتر بر پا اینها این رو نباید اینجا بپوشه حسن بنابرای این که داخل احرام وقتی که رفت داخل بسلام مکه مکرم حالا این که داخل عمرش در هنگامی که احرام هسته کشتن شپیش هم درست نیست شپیش ها رو هم نکوشی یکی از از کرام احرام بسته بود و شفرش روسترش میریختن ازیت بود نبی و کردنسان فرمودن صلی اللہ علیہ وسلم که ایوزی که هوا مراسک این شفرش ها تو دارا ازیت میکنه گفت بریارس ببینید دارا میریز این قادر زیاد بوده هوا گرم بود و حالا بود سر تو بتراش اما دوباره اونجا جریوشو فرداخت بکن پس کشتن اینا ها هم کشتن شفرش هم ممنوع هست یاد کندن مو در ایام حرام نباید الله بادشا بازی میکنن میکنن بوها رو اما شانه کردن سر اشکال نداره به صورتی که بوها کنده نشن پس بنابراین احرام وقتی که انجامی بعد بعض احرام کل احکام برول لازم شدن و حرکت میکنه به طرف بیت الله پس از واجبات قبل از میقات باید باشه قبل از میقات باید باشه و نیت و تلبی باید گفته باشه حرکت در هواپیمای توارید باید تلفیرو مرتب تلفی بگی لبیک اللهم لبیک لبیک الله شریک لکی لبیک مرتضت تلفی را بخوانید و آغایون با صدای رو بلند کنم اما خانومها خانومها نباید صدای رو با آواز بلند تلفی بگم آرام آرام آقایست که نامحرم صدای اونها رو نشن بعضی از خانومها که از اینجا برای شوق هم میگن فکر میکنن حالا که اونجا رفتیم همه چیز حلاله اینجا محرم و نامحرم دی خبری نیست بعضی با این انگیزه میرند چون چیزی خودم مشاهده کردم میگه اینجا دیگه مکه هست اینم حرم الهی هست اینم بیت الله اینجوری نیست داخل بیت الله بعضی خیانت میکنم. داخل بیت الله بعضی گراه میکنم. این روی بیت صفا و مروی داستان کوچی که بگم بعض از علمان نقل کرده هم و زمانی که قریش هم میامدن روی صفا یک بوتی بود بنام اساف، روی مروه یک بوتی نام نائله اساف و نائله اینها بوت بودن مشرکین مکه اینها رو پرستش میکرده عبادت میکردن اما جریان اینها چی بود اساف و نائله کنار بیت الله مرتکب عمل زشتی شدن وقتی او عمل زشت خلاف افت را انجام داده الله رب العالی اینها رو به سنگ تبدیل کرده و اون زمان اون آدم های نهل ها خاطر عبرت گذارسته ای که بالای صفایی که بالای مربع گذارسته تا مردان عبرت بکنن این حرم الهی است و معذیه باشید. گناه نمی کنیده. پس اونجا هم گناه می فکر نیکن اونجا گناه هم نیست سلام مادی ما دیگه رفتیم و اصلا از گناه خبری نیست اما یک چیزی هست یک چیزی هست این هم باید بگم وقتی که در انسان حاجی در حرم میشه عموماً برای اکثر حجاکی مشاهدی میشه اون حس مردانگی ضعیف میشه برای حاجی کلن تضعیف میشه خیلی الله میگه حالا ببین از تمام دنیا آدم امده هر نوع رنگی انسانها رو ببینید اما برای خیلی کم کسی که باطنش خیلی خراب باشه حسی داشته باشه عموماً این حس کلن از بین میره یعنی همون چیز الله میگه حالا ببین، جوان، خانومان قدرت ما اما کل اون چیزش الله رب العالمین تمودی سلب میکنه خیلی ها که رفتن این چیزو مشاهده کردن پس बराबरी پس باید موعظه باشین که خانم ها بگن ما میریم مکه اونجا دیگه اهمی حلالند و همین برادریم خواهرین از این چیزها نیست نه اینجوری نیست باید کامل ممنوعات و رعایت بکنن با بلند خانم ها تالبی پس وقتی که احرام بسته است پوشیدن سر ممنوع هست، استعمال عطر صابون ممنوع هست، قد کردن موها چیدن موها کندن موها ممنوع است گرفتن ناخون حرام است جایز نیست و نزدیکی با همسر و لوازمات آن کلا حرامند ایام احرام باید کامل فاصله بگیره جنگ جدال سر و صدا کردن با دگیرها گفتن شکار, شکار بعضی کالا قدیمها به آدم میرفتن شکار و گرفتن به طرف شکار اشاره کردن اینها ممنوع هستند. هستن یا گفتن اون طرف شکاری هست حضرات صحابه اکرام داشته میرفتن حج حضرت ابو قطاده رضی الله تعالی بیگه من بوده اما من احرام نبستیم ده چون محافظ نبی کریم بو صلی سلام. یک گور خری صحابه اکرام دیدن و گور خر حلال هست وقت دیدن هم دیگر نگاه می کردن ابو قصاد فورسلی چی خبره هیچ چنه گفتن چرا میخندی؟ جواب ندادن فقط اینها میخندیدن با خودش نگاه کرد که که گوره خری فوراً سوار اصل شد حرکت کنه گفت همین نایزر بدی گفت ما نمیبینیم نمی ناراحت شد چرا نمیدی گفت من نمیبینیم چون ما در احرامیم تا این آمد نایزر گرفت تو گوره خر حمله کرد شکار کرد او او حالا بخورید گفت ما نمیخوریم این شکار هست رفت پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود حالا شما میتونی بخوری چون نک شما شکار کردید و نک کمک کردید خودش گرفته آورده حالا میتونی بخوری پس در ایام احرام شکار کردن اشاره کردن کمک کردن هم جائز نیست کشتن ملخ هم جائز نیست اونجا سال ملخ ها بیارن پس تابستان است ملخ باشه کشتن ملخ هم جائز نیست و پوشیدن کفش هم جائز نیست و چیزهایی در دا احرام مکروحا شانی کردن مو به صورت موها بریزن اینها محکم خاروندن بدن در درمه چند تو بینید تنو دید، کم بینید، پس چه سوه؟ خب، پس اگر بدنشو که موها کند بیشن هم جائز نیستن و، شوش درست کردن هم ممنوع هست رو ناب انجام میده اما در ایام احرام باعث چیزها حلالن استحمام هوا غیر بود عرق داخل جده حمام خیلی زیاده فرودگاه جاده خیلی حمام بس بری اینجا استحمام کنی و در بای صورتها استحمام سنت هست بعض عرق را پاک کردو و با عرق پاک و غسل کردن و استحمام بری برای حج زیر سایه نشستن در نزد اهل سنت و جماعت ها بود چتری گرفتی بالا سرتان کلاه جایز نیست اما گرفتن چتر اشکال نداره اما یک سری چترهایی هست که از اندونزی میآیند این اندونزی ها می پوشند اینجا می بندن چتر اینجا می بند روز سرش فاصله از اینها استفاده نکنید چتر باید بالا باشه چتر استفاده چتر اشکال نداره داخل اتاقا خوابیدن اشکال نداره و سوار ماشین شدن اشکال نداره چون برادران که سوار ماشین های مستقف نمیشن در ایام احرام باید سخت ماشین رو بر بدارن زیر سایه هم نمیرن در نظمه دیگه اینها اشکالی ندارن وقتی که در حالت احرامی انگام بخوابیدن چپ خوابیدن جایز نیست باید دو صورت میخوابن باید صورت بیرون باشه اینها که دارای این عادت بعد هستن باید این رو بر بدارن این نو که سر پایین واشه صورت روی زدین خیلی اینجوری اینجوری میخوابه این نو اینجا هم جایز نیست این خابیدن شیطان هست احادیث نبی مکرنستان نه کرده اما در حج بدتر هست کسی اگر اینجوری بخوابه پرش جایز نیست و چو صورت پوشیده نیشه جز ممنوعات احرام هست اما اگر داخل پاسوان زخمی اومد پای جای خورد و یا همون ویلچیر زخمی کردن شما رو پاسبان کردن اشخال نداره کسی بیتونی پاسبان بکنه بی و پاشو ببنده سرمه چشمه ها بیر خراب استعمال سرمه هم اشخال نداره کشتن اغرب اغربی دی دیدی اون کشتن اغرب هم اشخال نداره کشتن مار هم اشخال نداره اینها که جز موزی هسته اینها رو میتونید بکشید اگر اونجا دیدی اینجا که دی دی دی خیلی کم پیش می اما خانوم ها، چونکه در اون قصد خانوم ها آمدیان، احرام خانوم در ممنوعات برای خانوی اینا همه هستند. اما احرام خانوم با مرد فرق میکنه اهرام احرام خانوم فقط در صورت فقط در صورت. حمین لباس رو که اجاب پوشیده با همین لباس، با همین آرائش فقط صورت بیرون میکنه و سرای بعدی رو باشه. دستهار اگر دستکش دستکار اشکال نداره، اگر جواهرات پوشید اشکال نداره، اگر جواهر و کفش پوشید اشکال نداره، بهتره که دستکش رو استفاده نکنه بهتره که جواهر نپوشی. اما اگر پوشید، برای او باشپیلیس خانو میتونه هارو بپوشه. اما در مقابل نامحرم چکار کنه. حالا نامهرمن میاد. در مقابل نامحرم رایسی نمیتونه چادر اینجوری بگیره رو فاصله باشه. یا امروز کلاه هست می‌ذارن چادر آویزون میشه این هم اشغالی نداره حدیثی دارین حضرت عایشه صدریغه رضی الله عنها ایدا سفر حج بودید ما بیرون میکردیم اما وقتی که نامحرم می‌رسی اون پایین میکشیدیم تا نامحرم ما رو نبینه پس برای خانو فقط صورت را چادر نه به صورت بچسبه نقاب می‌زنه روی کلاه کلاه می‌ذاره کلاه که فاصله بین صورت و چادر باشه احرام خانم ها لباس دوخته باید پوشه لباس مردها حرام هستن که مثل مرد احرام باید برای او حرام هستن انهار نبا انجام بده اما خانم اگر انگام مخاضر حج عادت شد بیماری ها شروع شدن این بیماری معنی احرام دیست مشکلی بر احرام او ایجاد نمی کنه اشکال نداره لباس احرام بپوشه فقط نماز نخانه نماز خواندن قبل از احرام نشدی هست واجب نیست لباس می صورت بیرو میکنه نیت می که من حج یا عمره میکنم و بعد هم ها رو می خونه حس ها معنی احرام نیستن با مجدوریت احرام شو بنده و حرکت کنه مکه رسید حالا بر مسافر خونه برای استراحت داخل حرم وارد تا زمانی که پاک نشده است و تلبیه هم می خانم لبک اللهم لبک اما آهسته نباید صدای خانم را نامحرن اونجا بیش نبایده و هنگام تواف کردن مرد ازتباه می یعنی دست راست بیرون حالا سب کن دست راست بیرون اما خانم چیزی رو بیرون نمی مردان در سه دور اول تواف می شرخن. هر دوری که میزنند یک شاک میشه. میشه هفت دور یک طواف است مردان در سه دور اول باید مثل قهرمانانات ورزش بیتر اینجوری باید شانه‌ها رو تکان و حالت دوندگی داشته باشند برای خانم جایز نیست خانو آرام باید بیره. این حرکت شانه و حالت دوندگی برای خانم ها اینجا نیست اینجا وقتی برای صفا و مروه می دن در خود صفا و مروه هم آغایو زمانی که بین به دو تا لاف صرد میدوه اونجا هم نمی دوند اینا مال خانوم پس در تواق دست بیرون نمی کنن حالت دوندگی بی خود نمی گیرن در صفا مروه جا ایک آغایون باید بدوند خانوم ها اونجا آرام آرام عبور میکنن و وقتی که برای خانوم وقتی که ازدهام هست بوسیدن حجر اسود جایز نیست بعضی خانوم ها بین آغایون خود رو می این قاص فشار میاد بعضی میمیره اونجا تماس خانم با مرد حرام این فکر می حالا اومده بعد حجر رو بوسه این جایز نیست بوسیدن حرام خود حجر این مستحب سنت واجب نیست نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به عمر فرمود عمر بن خطاب رضی الله عنه تو خیلی طوی هستی نزدیک نرو تو از دور اسلام بگو کافی هست افراد از دیگر میشد یکی رو خودم داخل حرم دیدن خانم اومده بود نزدیک گذرش قتل بشه بیلی موها بیرون چادر کنده شده همه سینه ها بیرون چرا بود. بوش دادر یک مستحب هزار تا حرام را انجام بده تاکیل مستحب را انجام بدهیم این جایز نیست از دور به خانون دور حتی هنگام تواف اگر ازدهام خیلی زیاد بود ازدهام خیلی زیاد بود که باید به با هم بچستن طبقه اول دوم سوم چهارون با هم برابر و مساوی هستند این نیست که حالا باید حتم نزدیک کعبه باشیم وا فقط طبقه بر بالا دوم و رو اما تماس با, با آغانه باشه هرج تو هرج درستی انجامید بده هرج که الله رب العالمین بپذیره این چیزی خانم‌ها خیلی برای مسهرن خانم ها, ها که از آغایون بیشتر مسهرن برای بوسه دادن خود حجر اسود این کارو توجیح کنید همسران را خانمها را مادر خواهر را توجیح کنی، کنید حرامه حدید خراب حرام میشه و کارو انجام نده و بعضا هم تواف تمام میشه دور که نمازی که میخونن پشت, حج... پشت مقام ابراهیم برای خانمها اونجا نماز خوندن که ازدهان باشه شروع باشه جایز نیست پرو جاید ای ایک گوشی از مسجد نماز کن بخون بعض تماس برنام محرم نباید باشه و انگامی که از احرام بیرون می آیند این ها فقط تیتروار می کنند توسیح کلی که گرونه انجام می دید. بعد انگامی که بخواه از احرام بیرون بی آیند آقایون انگام خروی از احرام سر را یا می یا موه کوتاه میکنن. اما خانوم ها نباید سر می یا موه کوتاه کنند فقط کوتاه کرده موی موه خانوم از بندی انگوشت است. تا موها جمع میتونه. به بندی اگو از اونها بهشی میکنه بیشتر نه. پس این ترسین کوتاه کردن مخصوص آقایون هست برای خااننم ها این نیست. بعد اگر هنگامی که تواف زیارت حالا در انجام اینام توواف زیارت دوباره خانم مضور شد. عادت باید شد. صبر کنه داخل بیت الله وارد نمیشه تا پاک میشه تاخیری که اینجا انجام میده در تاخیر و چیزی لازم نمیشه شوده. میتونی صبر رکو باید صبر رکو تا پاکی اما آغا نمیتونی بدون عوضر تاخیر تا کنی برای تواف تواف آخر که انشاءاللہ دوباره مفصل اینو توضیح میدین تسبن آبرین تواف تواف چل میگن تواف این از که هف دور دور بیت اللہ چرخیدن یک تواف است یک بار رفت کی دعا مدی میگن یک شود دوبار رفت کی دو تا شود چهار پنچ شیش تا ہفتہ هفت شاعت رفتی یک تواف حسابی شد کم از تواف ما نداریم پس هفت دور به اللہ چرخیدن باید یه با نیت تواف اینجا که میبرای تواف کردن باید نیت داشته باشی اگر نیت نکنی فقط به چرخیدن دور ربیت اللہ این چرخیدن ما هیچ عجری نداریم نیت کردن در تواف فرضی اینجا میرسی از اینجا که پسیلا دوباره شروع می کنی. از اینجا احرام میبند نیت تواف ای خدایا من میخوام تواف به طلاع انجام بدهم بار الله برای من آسان بکن و از من بپذیر باید اینجا این نیت رو اینجا بکنند اگر نیت نگه همینجور چرخی فقط این ورزشی بیشتر نیست و توافش هم قبول نمی شود. پس بنابراین هنگامی که به اگر اسوال میرسد اینجا هنگام شروع تواف بعد این هست حجر اسوال بعد این حجر اسوار سمت راست شما باشه سمت راست شما حجر اسوار واشی قبر رسیده بینجا این خط اینجا کشیده اینجا می ایستید و روبروی بیت الله روبروی حجر اسوار به این صورت می ایستید سمت راست شانه طرف سنگ قرار میگیره میگه مولا علی قاری رحمت الله علی یک از اولماهای خیلی بزرگ این داستان برات شما بگم مولا علی قاری رحمت الله علی وقتی کتابی نوریج برای حج ارشاد و ساری کتابی در بینزی در حج وقتی رفت انجا تواک چپه تواف کر وقتی تواف کر این بچه تفریدید که ای کاش کتاب بولا لگاری میخاندی میعمدی اینو خود اشمول حالت به تواس سمتراس هست انگان شوامی ایستی حالا تقریباً حجر اصفا جوری هست این سمتراس به انجوری برید براق سرفتید حجر اسوا سمت راست باید قرار بگیره سمت چونه علی حجر اسوار ود حجر اسوار باید باید باید بکن و هنگام نیت کردن بار الله من اراده تواف بیت الله دارم خدای آسان بفرما و از من بپذیر دستهارا صورتی که صورت اگر رفت نزدیکه بسلا خود حجر یعنی اگر فرصت شد اینجا بیای۔ اینجا معاظه باشی عموما این مؤتر هست عطر میزنن و اگر عطر زدن شما نبا دست می زنید چون دستاشا اینجا مؤتر می اینها جز ممنوعات احرامن. اگر اگرم عطر نبود به صورتی که سجده می کنید دستان جور می اونجا و می بوسید بعد توافره شروع می کنید. این شد استلام اول این یک استلام پس دستان روی این محفظه ای که از نغره هست داخل دست جا نمیشه اینجا روی محفظه میذارید و مانان سجده سر داخل میکنید میبوسید اگر چنین فرصتی مهیا شد گاه گاه این فرصت میرسه اما این فرصت که اونجا برای کسی خیلی مشکل هست پس اونجا میبوسید و حرکت میکنید اینجا این نقطه هست این مرتزم هست دواری شالا میگم از نتواب باید تواب از پشت این نیم دایره باشه. اگر این باز بود، اکثر که می بندن، اما اگر باز بود، اگر کسی دخواد از اینجا وارد بشه شه زود تمام کنم، این شوتش قبول نیست. باید از پشت این، از پشت این هجر اسماعیل یا حتیم هتیم هم میگم، از این هتیم باید بگذره. از پشت اون بیاد، این هست رکن یمانی چهار تا رکن داریم با، بیت الله چهار تا رکن داره، چهار تا گوشه رکن هجر هست. این هم رکن عراقی هست به طرف این رکن شامی رکن یمانیک به طرف یمن هست اینجا که رسیدی این رکن اینجا هم دست میگذاری فقط اینجوری دست میکشید رویش دادن و بغل کردن نه فقط همین یک جا رو میبوسی تنه همین سورا جا دیگر بطلاق بوسیده دی نمیشن کسی بخواد دیوارها رو ببوسه، درابی رو یا پایین رو ببوسه، یا این رکن یمانی رو بوسه اینها جایز نیستن. فقط این رکنا دست میزنی، اینجا هم دستی در کار نیست. فرق اینجا دست کشید، دست می میکشید و حرکت میکنی، و نباید اینجا هم موسیده بشه. از اینجا به سراغ رکن یمانی تا هزار، این از محلی که دوبار می رسید. اینجا کرستیدی دوبار استلام میکنی. این شو استلام دوم تا به همین صورت بر میگردیم تا آخر و شاعت آخر دوباره استلام میکنیم استلام هشتون یعنی شما باید هشت بار استلام میکنید این هم سنتا واجب نیست اگر کسی فراموش شد و عبور کرد و رفت در توافش خللی وارد نمیشه پس وقتی که اونجا رسیدین هنگام استلام کردن خود حجر اسوار ونجا میگی بسم الله الله اکبر لا اله الا الله اینو بگید و شروع کنید دعای طولانی داره فرصت برای اون دعای طولانی اونجا نیست چون ازدحام خیلی زیاده حالا میاد و شمارو از را اونجا دیگه دواری جلو پس همین که بسم الله الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر گفتید هم کفایت میکنه جلوی تک گفتی میتون لا اله الله الحمد و صلاة و علی رسول الله هم ثابت هست و رو انجام میدهند. پس به هر حال هنگامی که تواف شروع شد حالا شما تواف چ که برای شما خوب حالا بپده هنگام شروع تواف هنگام شروع تواف توا. از اینجا تواف کر برای اولین بار آمدی باید حاجی سمت راست رو بیرون کنه. یعنی چادر زیر بغل سمت راست آبی صورت و این که بغل بیرون باشه تا آخر توه، تا آخر بیرون بعد بیرون بمانه. و که بعد وسط توه داره چادر رو بالا بکشه. تا آخر بعد بغل بیرون باشه و از اینجا آقايان رنبل میکنن. یعنی هنگامی حالا دیدن. اگر ازدهام بود، این سنت این سنت از خیلی زیاده. اگر ازدحام بود ایستادی از بیس،, بی از از بیس،, بی بی از بیس حرکت دوباره به همین صورت تواره ازدحام شد ایستادی بیس دوباره به همین صورت واطا سه دور اول سه دور اول را به همین صورت واط میگونی ازدحام شد بیس حرکت دوباره به همین صورت این حالت را به خودتان بگیرید این سنت نبی کریم صلی الله علیه که به این صورت حرکت می‌کردم می‌رفتم را هنگام تواف در تواف می اگر کسی صحبت کر اشکال نداره سوالی کسی پرسید جواب داد اشکال نداره اگر تشنی شد اطراف خود بیت الله آب زمزم خیلی زیاده اگر کسی آبی هم نوشید اشکال نداره اگر نماز شروع شد حالا شما رسید اینجا اگر نماز شروع شد هنگام نماز تواف را تعطیل میکنید از همون که تعطیل کردی باید از همونجا شروع کنی علای جاش تعطیل کردی علای میگی جات نماز است دوباره تکان خود رفتی اونجا حالت داریش و اونجا میری بدون نیت داری میری باید اخر با توق از همینجا که تمام کرد. از همینجا دوباره شروع کن دور بعدی رو بزن اگر همین حالت در همین زمان وضو کسی شکست نیازی برای وضو پیدا شود بره وضو بگیره دوباره از همینجا شروع کنه اصلا چهار تا دو رفتی و ع که پایین که نزدیک که در طبقه باشه که هر دور نزدیک هفت متر نزدیک یک کیلومتره اونجا اگر وضو به شکلک اگه اگر اونجا وضو شکست دوباره وضو بگیر از همونجا ادامه بده و در توافیگوونه خللی وارد نمی شودده. پس اینجا تووابی پر اینجا تواف تمام شد با این از مقام ابراهیم پشتی مقام ابراهیم. اگر فرصتی شد به صورتی وسط باشه، اینجا شما دور نماز،, نماز تواف می خوانید این درکر نماز تواف واجب هستن باید خونده بشن، اما اگر اینجا نبود در کل حرم هم می توانید نماز را بخوان لازم نیست که اینجا خوانده بیشه در کل حرم در کل مسجد الحرم خونده نماز اشکالی نداره خانوم سعی سایی اینجا نخوند تو اینجا خیلی ازدهام هست و در نظر و جماعت در کل مسجد جایزه در نزد برادران باید هم اینجا بخونه پس ازدهام میشه پس شما دیم جای دیگر حرم در مسجد هر جای خوندید هم دور کنم از طواف را اونجا میخانید وقت نمازه سه ها حالا اینجا وقتی که تمام کردید اینجا حالا مسئله بعدی مسئله بعدی رو بگم دسیری جده سنت این است که سنت صالحین گذشتگان انو بیاین بوده مکه که می رسیدن وارد می اونها اونا آشقه گریه کنان با عشق خاصی وارد مکه مکرمی شدن و تلبیه گویان این قلی محکم تلبیه می که همین مردم تکان می خوردن خود جای رسیدن اونجا پا بهتره. بهتری اما اگر فرصت نشد این سوی امکان پذیر نیست و در چای زیتوه ی غسل مستحبه امروزه چای زیتوا هم شما نمیبینید چون در توس حرم وارث شده اما در جده غسل انجام میدید جاده غسل میتونید کنید مسجد الحرام مسجد الحرام که رسیدید دی اونجا بگه تحییت المسجد شما ندارید قییت المسجد نیست اولین کاری که شروع میکنیم کنید توافه پس انگام رسیدن به مسجد الحرام درهای متفاوتی هست در خیلی زیاده حالا اون درهای در شما دنبالش نگردی چونکه خیلی سخت برای شما از هر دری ایک رسیدی وارد بیشی به محضی بیت الله دید شد هنگام رویت بیت الله اجابت دعا هست حالا دعا قبول میشه اجره نکنی برای تواب بیت الله را مشاهده کردی دعا کنی بعضی میگن دست بلند کن بعضی میگن دست بلند نکن اما راجین راجعیم دستار بلند کن دعا بکن دعا بکنی تا بکن بکن هر چی میتونی بعد که دعا کردی مستقی میای برای شروع کردن تواف و تواف می و اگر وقت نماز بود اگر وقت نماز بود توافو شروع نکن بذار که نماز تمام بیشه و بعد نماز تواف شروع کنید اگر وقت نماز بود ساعت و نگام بید وقت نماز نزدیک و شما تواف اگر شروع نکردی میتونید اینجا بخانید. و اگر تواف تمام شد، این دوره که نماز تواف را اوقات مکرونه می بعد از عصر بعد از نماز فجر تا قبل سلوه و وقت زوال نماز نب خونده نمیشه، این تواف نواز تواف خونده نمیشه، اینا بذارید که افتاد تلوه کنه یا افتاد غروب کنه یا زوال رد بشه، بعد از اون انشاء الله نماز تواف را می خانید. این شیر <تصفيق>